پس به حالی ننوشتی و شد ایامی چند محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش پیشنهت لطف شما گامی چند چون می از خم به سبو رفت و گلف کند نقاب فرصت عیش نگه دارو بزن جامی چند قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست بوسه چند برامیز به دشنامی چند زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند ای به می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بحر دل آمی چند ای گدایان خرابات خدایار شماست چشم انعام مدارید ز انعامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خیش که مگو حال دل سوخت با خامی چند حافظ از شوق روخ مهر فروغ تو بسوغ، کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند.